مولای میگوید که محال جوی و محالم بدین گناه مرا قبول می نکند هیچ عالم و آمین تو هم محال ننوشی و معتقد نشوی برو برو که مریده اغول و اوحام محال جویی و محال بودن گناه هست پهلوی همه چه پهلوی عالم چه پهلوی عام و تو هم محال را نمیپذیری و محال را نمی, نمی جویی برای خاطر که اهل عقلی این پس مهار با اخ سر و کار دارد. میدانیم که صده ها به چه کسی دیوانه می گفتن؟ به چه کسی دیوانه می گفتن؟ به کسی که حرف راست میزند به کسی که حرف راست میزد می گفتن دیوانه است از این رو با این حرف عقل را مسطوداند خوب دقت بفرمایید دیوانه دیوانه بود چون راست می از طرف دیگر عقل را مسطوداند چون دیوانه دیوانگی ندارد. اسلام رو عقلی میدونن همه ادیان خودشون را عقلی میدونن می و همه امروزه عقل گرا شدن همه تابل و دخول و چیپور یوره عقل میزنن چرا چون عقل برعکس عقل که فقط حرف راست میزند عاقل همیشه حرف دروغ میزند قدرت و قدرتمند دین از دروغ خوششان میآید عقل را می تایند. چرا میشتایان چون که حرف راست نمیتواند بزند چون که حرف راست چون که حرف زدن حرف راست را ندارد برای خاطر عقل را میسوتایند. و دیوانه را کودکان در خیابانها و کوچه ها و کوی ها صده ها در جهان اسلام رجم میکردن یعنی مانند شیطان به او سنگ میپراندن سنگ میزدن چرا؟ چون راست گفتن در واقع یه چیز بدی بود کسی نباید راست بگوید با ستودن عقل در باتن دروغ را مقدس میساختند؟ عقل ستایی و عقل گرائی تو تو مقدس ساختن و پذیلت ساختن از دروغ بود محال اندیش کیست؟ این هست که راست میگوید محال اندیشی که مولوی میخواهد گستاخی میخواهد آیا با این عقلی که همه میستایند میشود محال اندیشی آیا عقلی که همه روشن فکران میخواهند از عهده تحول دادن اون چه مردم محال میدانند برمی آید عقل گرایی آخر در عقل چه چیز و است که ما می ستاییم آیا عقل به طور کلی ستوده می شود عقلی که نمی تواند و جرعت نمی کند رابطه اش را با خدا تغییر تق... رابطه مردم را با خدا تغییر بده چه تحول دیگری ایجاد خواهد کرد این خدا را کنار نمی شود گذاشت چرا نمی شود کنار گذاشت تغییر رابطه انسان با خدا یک مسئله بنیادیست یک مسئله متافیزیکی نیست که ما مسئله خدا را کنیم کنار بگذاریم. نه ما رابطه ای که با خدا داریم این همین رابطه است که ما به انسانها داریم فرهنگ ایران هزارها چه پیش از زردوش چه بعد از زردو شد. و به رقم زردو شد. خدا را بون هر انسان میدانست. اینو در می میگفتن فترت بون معنای ژربتر و عمیقتر از فطرت داشت چون که بون میروید به انسان میشه فطرت یک چیزی نیست که در درون انسان نهاده شده باشه بون یک چیزی نیست که در درون انسان نهاده شده این فطرت فطرت تسلیم است بون تسلیم نیست بون خود خدا در انسان نهاده شده است اینها را با هم دیگر نباید مخلوط کرد تغییر رابطه انسان با خدایی که در آسمان است و نیاز به واسطه ها دارد تا با انسان فقط امر و نهی بکند با رابطه‌ای که خدا در میان انسان و بون انسان می این یک تحول بزرگ است این تحولی هست که مولوی می و فرهنگ ایران می خواهد ولو اینی که اسلام و زردشتی این را محال کرده بودم ببینید مسعله راست مس قل جرعت راست گفتن ندارد عقل راست گفتن یک مسئله گفتن نیست مسئله ای نیست که ما در دلمان یک حرفی داریم و نمیزنیم راستی کلمه راستی که ارت اے ای باشه، این اسم جیمور بوده است ارتا راته که معنای حق و حقوق و راستی و ادالت داشته باشد راستی با بودن کار دارد با گوهر خود را آشکار ساختن کار دارد عآقلی که راست نمیگوید عآقلی است که بود خودش را انکار میکند وجود خودش را انکار میکند تو حق نداری آنطور در اجتماع در جامعه دینی باشی که هستی مسئله نیست که ما محز مصلحت و تقیه چارتا دروغ بگویم مسئله این نیست مسئله این است که ما وجود من را هستی انسانی من را از بین میبریم مسئله های ما این است این است که موروی میگوید ما چنین عقلی را نمیخواهیم اینی که میگویند عرفا عقل بر ضد عقل هستند بر ضد این عقل هستند و اون دیوانگی رو انسان اون چیزی که هست خودش را آشکار رو آشکار سازد این را میخواد و این را اسلام دین قدرت نمیخواد این یک مسئله فوق این از همه مسائل سیاسی امروز ما بزرگتر است عقل که آشکار یا پنهانی سر تعظیم در برابر قدرت های دینی و سیاسی و اقتصادی فرود می آورد در هر دلیلی که می آورد و در همه فلسفه بافی ها و نکت سنجی ها و تئوری سازیه ها و حکمت پردازی هایش حقیقت را به سود قدرت می پوشوند. در جامعه ای که همه به چنین گونه عقل می و چنین عقلی را معیار تعقل میدانند تنها دیوانگان و مستان هستند که حقیقت می گوید. چنین اخلی از دید فرهنگ ایران اصل دروغ اصل واجگونی سازی و تاریک سازی روشنیست. هر هرچند خود را روشنگر و هادی و راشد بخوانند اینها هستی انسان را نابود میکنند این که محض پیش رفته در اجتماع محض گرفتن حقوق چند تا دروغ بکنم نه مسئله نابود ساختنه انسان در است. عقلگرای چنین فدیده ایش مسئله بنیادی فرهنگ ایران پیکار برزده این عقلها ها برزده این مفهوم عقل هست. این گونه عقل است که اجتماع ما را فاسد و دروق و فریبکار و دروق و هوچی ساختن. این همه معرکه گیری ببینید در ایران معرکه گیری بمب اتوم در خارج معرکه گیری صد سیب معرکه گیری اکبر گنج اینها تمام معرکه است اینها همه نابود سازنده راستی نابود را, را سازنده رته ارتا در مرد نابود سازنده سیمرغ در وجود انسانشن اینها هستند که سیمور را افسانه کردند چون از سیمرغ میترسند اسمش را گذاشتن دجال در حالی که خودشان دجالند نه تنها الله نخستین چیزی که برای عبودیتش خلق کرد عقل بود الله عقل را اول خلقد چرا؟ برای اینی که مردم را عبد خودش کنند لازم داشتید همه قدرت های موجود در اجتماع این عقل را به نام عقل معیاری هر روز از نو خلق میکنند هر دستگاه قدرتی میاد سر کار عقل مخصوص خودش را خلق میکنند و میپربرد و تغذیه میکنند تا مردمان را همیشه بر سر عقل بیاورد. برد آموزشگاه ها و پرورشگاه ها و دانشگاه ها کارخانه عقل سازی هستند آقایان میفرماند که ما تحقیقات دانشگاهی میکنیم با این عقل ببینید از, از شاهنامه چی بیرون بردن از مولوی چه برنوردن وا این عقل ها نتیجه اینها مشخص است ادیان نوری یهودیت مسیحیت اسلام زردوشتیگری همه خلق کنندگان و مخترعان عقل هستند هر قدرتی عقلی که برای عبودیتش نیاز دارد خلق و اختراع میکنه توقیان عرفان در برابر عقل توقیان راستی و آزادی و اصالت انسان و صفا و صداقت و دلیری انسان بر ضد این خالقان و مخترعان دروغ و درویی و تذویر و ریا و باجگونه, باجگونه سازی مداوم حقیقت به نفع قدرت بود این ناچیزگیری عقل ما خنده میگیرد وقتی که در مولوی یا دیگران میخوانیم میگویم آه عقل مهم است چرا این مرد مگر این مرد ضعیف العقل بوده است که این حرف را زده است آقا ما را ضعیف العقل کردن به ما عقل چپنده اند ما را عقل گراه کردند، ما را محتاج کردند، ما را مانیکر اصالت وجود خود ما کردند. این عقل است که تغییر آن چرا باید تغییر به پجیرت محل می این در اثر احدیات و مسلحت کاری و تغییر ما هیچ وقت نمیگذارد که ما تغییراتی را که لازم است بنیادی بخواهیم و بطلبیم و دنبالش باشیم و بگوییم این چیز درست این چیز باید تغییر داده بشد درست این چیزی را که شما مقدس میدانید درست این چیزی را که شما مرجع میدانید درست همین چیز باید تغییر داده بشد مسئله بنیادی آزادی نجات دادن عقل از عبودیت اتابعیت یا به سخنی بهتر نجات دادن عقل از خالقش می ما انقدر خالق عقل داریم اندیشنده و فیلسوفی که بنیادی در اجتماع می اندیشد. بایستی با اون چرا در اجتماع محال شمورده می شود و همه مردمان ایمان با محال بودن آنها دارند از نشان بدهد که اینها تحبول پذیر هستند نومید نشید معیوس نشید گستاخ باشید این چیز این نقطه است این شما نرید دنبال ست تا کاری. این با این بزرک کاری ها دیب زیبانه می شود همون دیب باقی می ماند. شما باید این اصل را درست کنید این است که ما بایستی محاجوب باشیم برای این خاطر بود که میرزا حسن شیرازی در واقعی تنباکو پیش از مشروطیت با, دیدن با قبول اینی که تغییر اسلام در ایران محال ساخته شده است در تلگراف دویومش به ناستدین شاه می نویسد که با این امتیاز در اثر آمد و شد ایرانی ها به خارجی ها عقاید ایرانیان پاسد می گردد و اونگاه او نتیجه نمی‌گیرد که مانند روشن فکراره یا یعنی ما نتیجه نمی‌گیرد که خلق ایران پیروان و کانت و هگر و هایدگر و پستمودرنیسم و پوزیتیویسم علمی می شوند. نه این را نمی گیرد بلکه با قاطعیت میگوید که خلق ایران به کفر قدیم باز میگردد ببینید یک مولا پیش از مشروطیت متوجه شده بود که این محال نیست. ولی شما الان از همه این روشنگران گروسان و روشنگران عقل بپرسید که آیا بازگشت به کفر در ایران رها کردن اسلام بازگشت بهکفر محال هست یا نه با جواب اونها شما متوجه میشید که چقدر اینها میترسند عقل مقداد دارند همین ترس و واهمه از بازگشت ایرانیان به کفر قدیمشون و جدا شدن از اسلام است که امروز تبدیل به کینوتوزی شدید رژیم اسلامی با حکومت اسرائیل شده است چون حکومت اسرائیل پیدایش نخستین کشور غیر اسلامی در آسیای میانه است و آخوندها به خوبی میدانند که اگر این اقدام موفق بشود ایران دومین کشوری خواهد بود که خود را از بند اسارت اسلام آزاد خواهد در این تئوری های امپریالیسم و با امریکا و زدیت با موافقت با فلسطینی ها و زدیت با اسرائیل خودتان را در تنگنا نیاندازید. مسئله خیلی جربتر از این این اندیشه تحول و جنبش بنیاد فرهنگ ایران بوده است. تحول در بنیادی ترین مسائل در رابطی انسان و خدا خدا بن انسان ما پترت اسلامی را قبول نداریم بن انسان خدا است قرطا راستی ادالت حق اینها اصل سرچشمه حقوق در خود انسان فرهنگ ایران تحول و جنبش را بُن یا اصل کل جهان هستی و خدایان یان میدانست. ورتان، وشتن سیمور فر برد، ارتو فر برد، فروهریکش مها میگیم فر برد. این اسم سیمور بود است. یعنی اصل تحول اصل گشتن. این اندیشه را در تجربه های گوناگون خون از طبیعت باد و ابر و ماه و زایمان و رو ایدن و جوشیدن آب به عبارت می آورد فرهنگ ایران استوار بر مفهوم درک کل هستی عدبون بود خلقت را از مفهوم خالقیت درک نمی کرد. که یک کسی با امرو با دانشش خلق کرده است نه همه جهان هستی و خدایان از بن پیدایش میافتند و میروییدند این کشف اندیشه فوق فوقالعاده بزرگ بود با این هایی که آقا این ها حرف اصور هست و اینها وقت آن را صرف نکنید اونها در این تصاویر مفاهیم را فهمیده بودند درک کرده بودند که ما با مفاهیم علمی و عقلگرائیمان هنوز نفهمیدیم و نمیتوانیم بیان کنیم و جرأتش رو نداریم بیان کنیم اونها میگفتن دنیا از یک بون است انسان بون است مخلوق نیست همه جهان حسی و خدایان از بون پیدایش نفتن حتی خدا از بون پیدایش این بون تبدیل می به جهان وقتی می شد خدا جلوتر خدا نبود به عبارت دیگر اندیشه درک جهان را از یک خالق و از راه خلق کردن با اراده و علم او پوچ و بیمعنا می دانستند، محتوای چنین بونی جنبش و تحول بود نسبوت و سفتی و تغییر و ناگذرایی ببینید این بن تحول خب تحول رو در خودش نگه میدارد همیشه در رویش این تحول باقی می ماند سخت نمی ثابت نمی حقیقت جاوید نمی بن بون جهان که بهمن بود بن بون جهان بهمن بود این تفکر با تفکرات زردوشتی پقرات و فرق دارد بون بون جهان بهمن بود و این بن ناگرفتنی و نادیدنی بود در ماه دیدنی میشد و نخستین صورت خود را پیدا میکرد نخستین پیدایش در تفکرات آنها بیان آن بود که گوهر بهمن یعنی بن بن جهان و بن همه خدایان تحول است به عبارت دیگر بن بگا نیست بلکه حرکت و گشتن است و گشتن در در فرهنگ ایران معنای امیخی داشته است. گشتن همون کلمه وشتن است. یعنی رقصیدن. حرکت شادی و رقص بود. بون حرکت شاد است. بون انسان جشن است. بون انسان شادی و جشن از بون انسان آفرده میشود. ماه در آسمان تنها پدیده ای بود که در هر ماهی تحبل میاد. برای این خاطر اهمیت داشت این و این تحول شگفت آنها را برمیانگیخت. آنها اندیشه بنیادی خود را از تحول و جنبش در بن هستی در این پدیده در آسمان بیان میکردند. رسیدن به چنین اندیشه ولو از دید علمی امروزه ما بیراه باشد یکی از بزرگترین موفقیت‌های فرهنگ ایران در فلسفه بوده است همیشه از پیش فرد های نادرست انسان توانسته است به پیایندهای بسیار سودمند برسد در واقع برای خاطر اینکه این موضوع روشن بشود فکر نکنید همیشه از چیز درست درست پیدا می‌شود نه در واقع دو چیز برابر و مساوی در جهان وجود ندارد ولی از این پیشورد که چیزها مساوی برابر هستن پیشورد غلط هست ولی از این پیشورد غلط برابری علم ریاضی به وجود آمده است و بر پایی آن مکانیک و اختراعات فنی شده است نه نقطه وجود دارد نه خط وجود دارد و نه سطح ولی از این مفاهیم هندسه به وجود آمده است از این که از یک نقطه فقط یک خط موازی با خط دیگر می میتوان کشید غلط است و همه هندسه های غیر اغلدوسی آن را رد می کنند. ولی ولی برپایی همین غلط ما چه سودهایی می بریم؟ از همون اندیشه برابری و تصاوی که به کلی غلط است، همه نهدت های اجتماعی و سیاسی و دینی سرچشمه گرفتند. همه تئوری های فطرت انسان همه تئوری های فطرت انسان ساختگی و جالیان امون تئوریه اسلام در فترت انسان در اسلام هم جانیست ولی از همین تئوری ها که در برابر این تئوری های ادیان نوری ساختم از فلاسفه از همین تئوری ها به حقوق و بشر رسیدم که اکنون بدون این تئوری ها می تواند خودش طرف پای خودش بیستد پس نتیجه داشته. فرهنگ ایران در تجربی که از ماه و ابر و باداش به به اندیشه پیدایش صورت از بیصورت رسید ببینید بهمن ناگرفتنی و نادیدنیست بیصورت ولی از بهمن ماه یا هما پیدا میشود سیمرغ پیدا میشود که چی دارد؟ صورت دارد ولی از بیصورت پیدا شد بعد از این به اندیشه حرکت و جنبش و تحبول در بونه هر جانی و هر انسانی رسید پیدایش صورت از بی صورت به جای محکوم خالق و مخلوق. همین اندیشه را زردشتیگری محار ساخت خدا را تبدیل به روشنی همیشه ثابت و تحبول ناپذیر ساخت همین اندیشه تبدیل به علم همیشه ثابت و معلومات انبار شده در الله و یهوه و پدر آسمانی گردید. همین اندیشه. فرهنگ ایران در اثر اون اندیشه تحول در بنه هر چیزی بنیاد بینش حقیقت را جستجوی همیشه انسان قرار داد. نه ایمان به یک کتابی چه قرآن باشد، چه گاتا باشد، چه تورات باشد، چه انجیل باشد. خدا هم در فرهنگ ایران جوینده بود. نه انبار کل معلومات. اینی که میگویند اسلام ایمان به علم دارد، این دروغ محض است. علم در قرآن، علم الله، یک صندوق، یک کمپیوتر کل معلومات اندی اندیشیدن علمی وجود ندارد خدا این را اصلا ولی در فرهنگ ایران خدا هم جوینده است در, در اثر این معلومات همیشه ثابت در الله و یهوه و سایر این تصابیر خدا قرآن و تورات و انجیل به انوان معیار ثابت بینش حقیقت به وجود آمدن از این پس ده زدن به این علم محال هست حالا مولوی میگوید تحول دادن چنین تصویری از خدا و از انسان ممکن است